ارز سلام و ادب و احترام خدمت دوستان جان و یاران همراه با قسمتی دیگر از داستان سیاوش از سری داستان‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در خدمتتون هستم در برنامه قبل به اینجا رسیدیم که سیاوش در توران زمین ماندگار شد و ابتدا با جریره دختر پیران ازدواج کرد و بعد از یک سال برای استحکام پیوندش و ماندگار شدنش در توران زمین با فرنگیس دختر زیبا و دانای افراسیاب ازدواج میکنه بعد از اون افراسیاب بخشی از سرزمین توران رو به سیاوش میسپره و فرمانروایی اون منطقه رو به سیاوش میده سیاوش هم در اونجا شهری رو برپا میکنه و پیشگوها بهش میگن که این شهر برای تو بد یمنی میاره و آخر آقابت خوبی نداره. وقتی این مسئله رو با پیران مطرح میکنه پیران بهش میگه که به دلت بد راه نده و اینو بدون که من همیشه کنار تو هستم و پشتیبان تو خواهم بود. ادامه داستان سیاوش رو از اینجا به بعد با کمپ هم میگیریم همراه ما باشید شهری که ساخته شد برای سیاوش خوشبختی و آرومش به بار نیاورد. اون از ساختن شهر گنگ شادمان و رازی نبود. روزی دوباره با دلی تنگ و خاطری آزرده به پیران گفت ای پیران من گمان میکنم که به فرمان افراسیاب کشته خواهم شد و دوباره آتیش جنگ و کینه بین ایران و توران زبانه خواهد کشید میدونم که بعد از مرگ من دریایی از خون تمام جهان رو دربر میگیره پیرانباز هم به اون دلداری میده و میگه نگران نباشند دوگین نشو و این اندیشههای پریشون رو از خودت دور کن مدتی میگذره سیاوش در گنگدژ با بیم و امید زندگی میکرد روزی قاصدی با نامی از افراثیاب به نزد سیاوش میاد و نامه رو به سیاوش میده توی اون نامه افراسیاب نوشته بود که از روزی که رفتی بسیار دل تنگم و یک دم آروم و قرار ندارم به نزد من بیا تا از دیدن تو شادمان بشم سیاوش به پایتخت توران نمیره در گنگ دشم نمیمونه میخواست به جایی بره که بتونه راحت و آسود زندگی کنه اون میدونست آزایشی که آرزوش داره تو کاخ افراسیاب پیدا نمیشه و از این پس در گنگ دش هم آرامش خاطر نخواهد داشت تنگدل و ملول بار سفر رو میبنده و به همراه گروهی از یارانش از شهر بیرون میاد اون شهر رو پس از سال ترک میکنه و به این نیت به سرزمینی دیگه میره تا شهر جدیدی بسازه که به تصور خودش در اونجا با آسودگی زندگی کنه به سرزمینی خوش آب و هوا میرسه مدتی رو در اونجا میمونه و چون طبیعت زیبای اون دیار رو میپسنده به یارانش دستور میده تا برای ساختن شهری زیبا آماده بشن سیاوش روز و شباسایش نداشت و شخصا بر همه کارا نظارت میکرد تا ساختن این شهر هرچی زودتر به اتمام برسه. سرانجام شهری با صفا ساخته میشه که دو فرسنگ طول و دو فرسنگ عرض داره. برای هر هرچی زیباتر کردن اون شهر در همه جای اون و لاله می و بر در و دیوار کاخ خودش نقشی از بزم شاهان و نیاکانش رو به تصویر میکشه. بر تخت زرین خودش چهره و قامت رستم دستان رو تلاکاری میکنه. در یکی از تالارهای قصر هم سیما یکی کاووس رو با نقوش برجست و کندکاری های بسیار زیبا و دلپذیر ایجاد میکنه. و در یک قسمت دیگه ای کاخ نقاشا و هنرمندان چهره پیران مهربان رو باز زینت و زیورهای بسیار دیوار میکشن. پیران که از مدتی پیش به هندوستان رفته بود از سفر باز میگرده و به دیدار سیاوش میاد. سیاوش از دیدن اون بسیار خوشحال میشه و اونو دعوت میکنه تا از شهری که ساخته بازدید کنه. پیران هم میپذیره و به همراه سیاوش به دیدار شهر. پیران بعد از دیدن اون شهر زیبا شگفت زده میشه و به سیاواش میگه آفرین بر تو شهری ساخته ای به سان بهشت. در حالی که میخندید با سمیمیت اضافه میکنه که من گمان میکنم که از این پس تو خوشبخت خواهی بود و دو کشور ایران و توران برای همیشه در آرامش زندگی خواهند کرد. سیاوش از خوشحالی پیران شاد میشه از اون تشکر میکنه و میگه وقتی به دربار افراسیاب برگشتی به همه بگو بیانه از شهر من دیدن کنن چند روز بعد پیران نامه ای نوشت و به گرسیوز سفارش کرد که بیاد و بهشت زیبای سیاوش یعنی شهر سیاوشگرد رو ببینه گرسیوز قبلا از ساخته شدن سیاوشگرد اطلاع داشت بعد از اینکه نامه پیران رو دریافت کرد به همراه گروهی از پهلوانان ترک آماده سفر میشه به قصد دیدار اون شهر از پای تخت توران زمین بیرون میاد در راه اصلا توقف نمیکنه شب و روز با سوارانش به تاخت میره تا به سیاوش گرد برسه سیاوش از گرسیوز و همراهانش استقبال میکنه گرسیوز رو در آغوش میگیره و با اون احوال پرسی میکنه. گرسیوز در یکی از تالارهای کاخ سیاوش اقامت میکنه. سیاوش میکوشه کاری کنه که توی این سفر به گرسیوز و همراهانش خوش بگذره. پیوسته وسایل شادی و نشات و اونها رو فراهم میکنه. یه روز مسابقه چوگانی ترتیب میده. در این مسابقه ایرانیان و تورانیان شرکت میکنند بازی حیجان انگیزی بود. هرکس کس کوشش میکرد که در اون مسابقه برنده بشه. اما سرانجام ترکان بازی رو به ایرانی ها میبازند. گرسیوز از باختن تورانیان بسیار ناراحت میشه و در صدد جبران این شکست برمیاد به سیاوش پیشنهاد میکنه که مسابقه کشتی برگزار کنند و اون دو نفر یعنی سیاوش و گرسیوز با هم در میدان کشتی بگیرند سیاوش که از ناتوانی و آگاه بوده برای اینکه اونو در انظار شرمنده نکنه از پذیرفتن پیشنهاد اون خودداری میکنه او به اون میگه تو برادر شاه توران هستی و شایسته نیست ما در مقابل دیدگان دیگرون با هم گلاویز بشیم گرسی و از حرفی نمیزنه اما سیاوش چون آثار رضایت رو در چهره‌ی اون میخونه میگه من آمادم با دوتن از پهلوان توران کشتی بگیرم. به این ترتیب سیاوش بدون اینکه خودش بخواد بار دیگه گرسیوز و تورانیان رو تحقیر میکنه و پشت اون دو پهلوان تورانی رو به خاک میماله. گرسیوز همونطوری که انتظار میرفت پیروزی های پی در پی سیاوش و ایرانیان رو تحمل نمیکنه. احساس میکنه که اونها به اون و به توران توهین کردند. کینه سیاوش رو به دل میگیره و چون دیگه نمیخواست در سیاوشگرد کرد بمونه و خاری بیشتر رو تحمل کنه به پایتخت توران برمیگرده گرسی و از پس از برگشتن از سفر به ملاقات افراسیاب میره و در پاسخ شاه توران که از حال سیاوش رو همسرش میپرسه شروع میکنه به بدگویی کردن از سیاوش و سعی میکنه شاه رو نسبت به اون بدگمان کنه افراسیاب میگه در سیاوش سیاوشگرد من دریافتم که سیاوش با کیکاووس پیمان بسته گمان میکنم که پدر و پسر با هم آشتی کردند افراسیاب با نگرانی سری تکون میده و به سخنان برادرش گوش فرا میده گرسیوس که شاه رو مشتاق و کنجکاو میبینه به قول معروف روغ انداغ رو زیاد میکنه و میگه گمان میکنم با روم و کشور چین هم پیمان دوستی بسته و میخواد با همکاری اونا به ما بتازه و تو رو از تخت شاهی توران زمین زرنگون کنه و خودش به جای تو شاه توران بشه افراسیاب از شنیدن سخنان گرسی و از افسرد و پریشون میشه از سیاوش انتظار دشمنی و بیوفایی نداشت اون سیاوش رو در خاک توران مثل فرزندش عزیز می داشت پس چرا کسی که تا این حد به او خوبی کرده قصد خیانت داره و می خواد سیاب رو سرنگون کنه سرانجام به گرسی وزبت میگه؟ میگه گه شتاب نکنیم اگه بی خون خونه اونو بریزیم روس وامیشیم اما گرسیو است که کینه سیاووش رو به دل داشت و دشمن اون بود به شاه هشدار میده و میگه بدون که اگه سیاوش از توران به ایران بره سرزمین ما ویران خواهد شد اون همین الانشم هم کینه ما رو سخت به دل گرفته اگه با پدرش هم دست بشه توران رو نابود خواهد کرد افراسیابو بازم میگه نه الان موقعی شتاب کردن و عجله نیست من اونو به اینجا فرامی خونم به دربار که اومد بی گمان نادرستی او آشکار میشه و اون چه در داره رو ازش آگاه میشیم گرسی پاسخ میده بدون که سیاوش تنها به دربار تو نمیاد اون همین الان داره سپاهی بزرگ رو آماده میکنه و با سپاهش به اینجا میاد تا تو رو سرنگون کنه اون دیگه اون سیاوش سالهای گذشته نیست فرنگیس هم مانند اون شده و الان جزو دشمنان ماست و ایرانیان رو از ما برتر میدونه وسوسه های گرسیوز کاملا در افراسیاب اثر میکنه و اونو نسبت به سیاوش بدگمان میکنه رنگ صورت افراسیاب زرد میشه و پریشان به نظر میرسه گرسیوز بدسرشت هم دائم بر این خشم و پریشانی اضافه میکنه و شاه رو اوشفته تر از قبل میکنه سعی میکنه هر جوری که شده افراسیاب رو تحریک کنه افراسیاب که در آتش خشم و کینه میسوخت رو به گرسیوز میکنه و میگه برو به سیاوش بگو به پایتخت توران بیا و بهش یادآور شو بگو که افراسیاب خواهان دیدار توه و دوری تو اونو رنجور کرده گرسیوز که منتظر بود افراسیاب چنین تصمیمی بگیره از خدا خواسته آماده رفتن میشه در سفر قبلی اگه به قصد تفریح و دیدن شهر سیاوش گرد رفته بود این بار با دلی پر کینه میره میره تا سیاوش رو با آتش خشم افراسیاب بسوزونه وقتی گرسیوز به سیاوش گرد میرسه سیاوش مانند دفعه قبل از اون استقبال میکنه و از شنیدن پیام شاه شادمان میشه به گرسیوز میگه من آماده رفتن به دربار افراسیاب هستم گرسی که انتظار نداشت سیاوش به این زودی تصمیم بگیر و برای رفتن به نزد افراسیاب ازها را آمادگی کنه نگران میشه و با خودش میگه اگه سیاوش پاش به دربار برسه من رسوا میشم باید کاری کنم که اون از اومدن منصرف بشه لحظاتی خیره به سیاوش نگاه میکنه و تظاهر به گریه و گریستن میکنه در حالی که اشک در چشماش جمع شده بود ساکت موند و حرفی نزد سیاوش که اندوه و ناراحتی اونا دید پرسید چرا نگران افسرده شدی از چه کسی میترسی از افراسیاب اگر به پشتیبانی من نیاز داری به من بگو تا یار و یاور تو باشم گرسیوز از اشکاشو پاک میکنه و میگه من از افراسیاب بیمناک نیستم از اینکه اون با تو دشمنی کنه نگرانم و میترسم که به تو گزندی برسونه. مگر نشنیدی اون برادر شغلی رس رو از پای در آورد. اکنون اون کینه یه تو رو به دل گرفته. به تو هشدار میدم که از اون پرگیز کنی. سیاوش خوشدل و پاکنیت به گرسی از میگه نگران نباش من به مهر و پیمان و اون بسیار دلگرمم. با تو به نزدش میام تا بار دیگه دیدارها تازه بشه و دوستی جای دشمنی رو بگیره. گرسیوز باز هم سعی میکنه تا سیاوشو از رفتن به پایتخت تخت توران منصرف کنه و به اون میگه از افراسیاب بترس. من اونو بهتر از تو میشناسم، اون پیمان شکنه، اون شاه سنگ دل برادرش رو هم با شمشیر به دو نیم کرده سیاوش که تحت تاثیر حرف های گرسیو گر قرار گرفته بود، به فکر فرو میره و گرسیوز که میبینه سخنانش داره، اثر میکنه، ساکت میمونه تا سیاوش تصمیم بگیره سرانجام سیاوش سرش بلند میکنه و با شک و تردید نگاهی به گرسیوز میندازه و میگه هرچی فکر میکنم میبینم که گناهی نکردم تا سزاوار خشم و کیفرف را سیاب باشم. من به نزد اون خواهم رفت. بدون سپاه و بدون ساز و برگ جنگ. گرسیوز بهش میگه هم همچین کاری بکنی. اگه تنها و به این شکل و شمایل به نزده اون بری بی گمان، پا به دوزخ گذشتی و از آتش خشم اون خواهی سوخت بهتره به جایی رفتن به دربار اون براش نامه بنویسی از پاسخ افراسیاب به دشمنی او پی میبری من امیدوارم که برادرم بدخواه تو نباشه و با تو دشمنی نکنه اگر پس از دریافت پاسخ نامت پی بردی که اون بدخواه توه میتونی به میهنت بازگردی در اونجا همه هوادار تو هستند به نزد پدرت برو که اون از دوری تو بسیار دلتنگه خوب دوستان عزیز مجال این برنامه هم به پایان رسید اما داستان سیاوش هنوز به پایانش نرسیده امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت پرده باشید و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوندگار مهربان می سپارم روز و روزگارتون به کام و به میل.